آه. خب اصلا زمان خیلی خوب بود یه زمانی میوه ها اتا مزده داشته فکر نمی کنم میوه ای داشته باشه مزده ایش مزه داره نیست <تصفيق> <تصفيق> 29 خرداد 1394 اپیزود سوم از فصل یکم رادیو 18 بنامش ابسولتو تابستون کوبا آمریکا سیگار روشن کنار قهوه پرسیلت دنبالت گشتم آدم به آدم قیابونه ها رو یه تاکسی زن اومد و بردت ندارم برای آخرین بار نگاهت کنم و این آهسته به خواب رفتنت را دوست بدارم آفتابی ملایم بالای سرت بگیرم و بادی به اندازه آسمانت را نباخندهای گاه و بیگاه و ناپایدار ابرها که با بازی دو گنجشک سرگرم کنم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 آرزو کنیم این بار که برمیخیزیم کسی به اشتقبال ما باشد. چشمایت را ببند، نه ترس. بیا در آغوش تابستان بخوابیم و فقط آرزو کنیم. فصل داشت بهار پاییز زمستان و فصل دیگری هم احتیاجی نبود بهار درختها برگ هایشان سبز می شد بهار که تمام می فردایش پاییز بود بی مقدمه و ناگاه خیابان و کوچه ها از برگ پوشیده می شود. و زمستان درختها به خواب کرد هیچ کسی از خودش نمیپرسید چرا برگها ها ناگه ها می ریزن هیچکس هم ریختن برگها ها را بود فقط یک روز صبح وقتی بیدار می میدیدند می خیابان ها پوشیده شده از برگ کسی نمی دانست چه اتفاقی برایشان افتاده هیچکس هم سوال نمی کرد و تورج زندگیشان را ساده شروع کردند با یک یخچال، اجاق گاز، دوتا موب یک تلویزیون ساده، یک میز غذاخوری دو نفره و یک گلدان جوان به مرور رفت آمدشان به محل کار بگونه ای شد که معمولا هم را کم پس برای هم یادداشت می‌گذاشتن و خانه را ترک می کردن. غزل یادداشتی داشتی می نوشت و می روی در یخچال. غزل توی یخچاله، هر چقدرشو خوردی برداشو بذار توی یخچال. تورج یادداشتی نوشت و چسبان روی اجاق گاز. رفتی سر کار برگشتنی کت منو از خوششوی بیار. غزل کنار تلویزیون قربسارو چسبان. یادت نره اینا رو پرداخت کنی. اختار خورده.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 اف تو تورج, تورج یادداشت غذر را خواند و به نهالی که با هم خریده بودند خیره شد تا آن روز کسی ندیده بود چرا برگ ها میریزند؟ تا آن روز کسی تابستان را ندیده همچین واجهی اصلا نبود اما آن روز سال چهار فصل گرفت و تابستان شد فصل آب دادن به گلدان فصلی که باید کنار گلدان یادداشت گذاشت دوستت دارد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 می‌آیم با تمام هر کسی هر شد مرا خرد میکند در آن کنده شدن دارد شو ری در آن ندارد شتاب بدن مسیب زوده کدوم تابستون کدوم بچه ها کدوم چند تا پرنده اون همه هیاهون اون همه قیل و قال کوچه کوچه باز بود هر جا میخواسته بری باز از اون کوچه رد میشدی رفت و اومد آدما. هر کسی رد میشد نون برداشتن ها. ها در بوش هم پچپچ کردن ها مردا به درخت آب دادن ها پسرا خوندم آخا بازیاشون دخترا باد بادک هوا کردن ها لیلی کردن هاشون زهرام که میشد خورشید میشست تو قفص لا شمدونی کنار عکس رفته هامون بزرگا میخوابیدن بچه یواشکی تو رویاهاشون اسرام که میشد پسرا چشم بستناشون. دخترا قایم شدن ها چشمی بستیم قایم میشدن چشم میبستن دل میدادیم دختره رو یادته همونی که به شب خرد و دیگه بر نگشت همون روزی که سنگشو سر داد خونه آخر خونه اول جزد خونه دوم جزد مامانش از ته کوچه صدا زد اسمشو بعد گرفت تو پر دومنش چه شسلیاش از زیر موهای ریخته رو صورتش پیدا شد چشامو بستم رد شد از کنارم رو ته کوچه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 جنازه ها فقط جنازه ها آخ مامان آخ مامان مامان فقط فقط توی کس گریه کردن سر قبر بچت سیر نمیشی فقط توی هنوزم دارم نشونیش از مرده ها میگیرم میتونم بگم اونجا میتونم بگم اونجا نشو. ایسی که از رایت بولن آدم نمیدیمی دلیشو کجا افادیم میکنه توی یکیش میزنی بیرون توی یکیش عاشق میشین توی اکیش اگه اگه اگه شانس بیاری می میری اگه شانس دنیمی چی باید خوشحالم که برنامه روژه به تابستونه و ما تو اول فصل تابستون فکر میکنم هستیم و این قطعه که میخوام براتون بخونم روژه یه رومانیه که توی تابستون میزه نه فکر نکنید منظورم از این که توی تابستون مثلا سماه تابستون داره بررسوم میکنه نه من و همکار هم اما غلام دولت آبادی مشغول به پایان بردن یه رومانی هستیم به نام پولیم رمان پول توی یک روز میگذره و اون روز روز ۲۴ مرداد 1992 تحکیدی هم داشتیم که یک روز گرم تابستونی رو انتخاب کردیم برای که نشون بدیم که تو یک روز گرم تابستونی چه از داستان یعنی مثلا از ساعت 6 به بعد بارون میگیره بارون ناوه هنگام تابستونی اسم بارون رو بذاشتیم چه اتفاقاتی توی این شهر میتونه بیفته؟ این شهری که حافظه شده در دست میده این شهری که آدماش دارن فراموشکار میشن. آخه فراموشکاری چیز بدی نیست. بدتر از اون اینه که آدماش دیگه آدم نیستن. در واقع از انسانیت دور شدن. یعنی اگه یکی بپره تو تمای میگم تمش از دست رفتن انسانیت حالا چه موقعیتی شاید تو یه روز گرم تابستون. ولی دلیل نمیشه که اون روز پاییزم بود انسانیت دارد دست داده.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 قصه ششون. فریبا با بایرامی از ساعت سه نیمه شب که اسمس واریز مبلغ 400 ملیون ریال به حساب بانک و پاساوگاه داشت رسیده و صدای دینگین که اسمس از خواب پرنده میدهش چشت رویه هم نگذاشته منتظر بود زودتر ساعت 7.30 شب تا با پراید نکمه دادیش اسمانه محبوبه قابلی در محله 400 دستگاه پیروزی خودش رو برای ساعت 8.30 داره سانت ته بلوار اقتم تا بیوک بایرامی را بعد از دقیقا یک سال و نیم ببینید و بپرسد ماجرای اون چیست که باید شب عروسی از طرف او به حسابش واریز شد بیوک اگر شب برنامه عروسی داشت ساعت هشت یک نیم یک روپه نو خانه پرش نه صبح در دفتر پشت با پشت میز مدیریتش نشسته بود و چک ها و فاکتور ها و رسید های عروسی را کنترل میکرد و اگر حال و بسترش میکشید، سرزده می میره بالا سر کارمندها و کارگرها و با دقت نظارت می کرد تا همه چیز مطابق برنامه شود. فریبا ماشینش را جلوی در سر رنگ و بزرگ بزرگ آهنی باخت، حالا زیر سایه یک چنار پای سن سالدار کوچه مشکک پارک کرد. از روی جعبه سبز رنگ آدامس نعنایی ریلکس را در آورد و دو ست تایی خالی کرد، کف دستش و به دهان انداخت و شروع به تسکیره سندلیاش را بالا کشید و با پشتی صندلی عقل رفت. سرش را روی بالشتک سندلی گذاشت و اینکه آفتابیش را کشید بالای پیشونی چشم. صورتش کوره بود. منتظر بود تا کی لکسوس سفید رنگ توکرم بیوک از خیابان پایینی به پیچه جلوی در تالار و با بوقی بو بو در به رویش باز شود. آن وقت بود که میتوانست برود سرابش. بیوک پارسال دقیقا تو همین روز بود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 تمام طول راه را در شیشو بش بود که برود پول را به حساب و برگردوند و اصلاً به روی خودش نیاورد که چنین پولی رفته به حسابش و بیرون آمده. سرکوچه تالار که رسیده بود پاسوس کرده بود. نیم دوری زده بود که برگردد ولی فرمان در دستش خوش شد. دستش نتواسته صدای زنگ خفه گوشی موبایل آیفون 4 از تو پیف آمد.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 لطف کند لباس و تاج عروس را پی کند خانه عموی مصطفی آنجا میلاد هست و آن را تحویل می سر سرگردان به صندلی عقب نگاه کرد جوبه سفید رنگ کفش عروسیش که دیشب با محبوب و کوچو بلن خریده بودند همانطوری دست نخورده مانده بود صدای بو ماشین بیوک فریبا را به جلو هل سر سرگردان ماشین بلوک را دید که وارد ماشین روی حیات باختانور شد نمی رسید برود پیش نسیم باید حتما با پیک برایش بفرستم. اگر هم لباس مشکلی داشت، خود نسیم دو سه سا ساعت قبل از می توانست میتونه استراستریستش کنه. همین چیزی نشده. باید برم خودم کارش با نوک سوئیچ ماشین به در آهنی ورودی مهمان باغتالا چند ضربه بزنم. تق‌ق در بزن. نگهبان باغتالا چند ضربه به شیشه اتاق زد تا فریبا که همینطوری داشت برای خودش به طرف دفتر مدیریت باغتالا می متوجه او شد. فریبا به اون نگاه کرد. نگهبان با دست اشاره کرد که کجا دارد میروند؟ فریبا اینکه آفتابیش را بالا کشید و دست بکردار زد. نگهبان از داخل همان اتاقه که نگهبانیش یک دست رو سینه گذاشت و تظیم کرد و با دست دیگرش اشاره کرد که بفرمایید از پنشش پلهی که راه ماشین رو را از راه مهمان ها جدا میکرد بالا رفت.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 که پاپیون قرمز فرم باختالار زده بود از کارتون بزرگی شمهایی از پیش گذاشته شده در جاشمی های شیشهی را در می و به فاصلهی هیچ از همیچید می لب فرش قرمز دو پسر جوان با همان لباس های فرم باختالار گلدان های پای بلند سفید رنگ گل روز را هنهن هن کنان خرکش می کردند و می کنار فرش و دو به فاصله دو متر دو متر کنار هم صف می کردند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 I walked in town on Silver Spurs, the jingle too A song that I had only sang to just a few She saw my Silver Spurs and said let's pass some time And I will give to you summer wine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 Summer wine. Oh, summer wine. فصل ها اتفاقی که برای کماده لباس هم میافته. با پاییزی که ابراش نریختن و چتراب و شال گردن به کارمون نیومدن با اون پاییز اطرای تلخ که نمیدونستیم تنهاییمون تخصیلی کی که بعدش هر وقت میشنیدیم پاییز سکوت می کردیم کنار پنجره. یا با زمستونی که برث نداشت و حال تو لباس زخمی ما رو باز نکردیم و جای دو نفر قدم زدناممونو کسی ندید و بعدش هر وقت میشنییم زمستون سکوت می کردیم کنار پنجره.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 این فیلم سکوت کنار پنجره. فقط تابستون مونده خیالمون راحت کنه زمین باهامون قهر نکرده. فقط تابستون مونده واسه باز کردن کمده لباسه تابستون فصل آسینا کوتاه لباس های نازک. تابستون فصل ااجرای خونک نشونی ما کنار پنجره بردا صبح توبی داره! <تصفيق> Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring My summer wine is really made for سناه خرداد 1394 اپیزود سوم از فصل یک رادیو 18 بنفش نش حساما دارم به جای تموم می‌ذارید اینا که زوری اینا که روشن نمیشه از یابنده آن را به پلات تحویل دهد چیز <تصفيق> زیاد داریم اتفاقا پشت استفاده نکرده زیاد داریم از دوستان قدیمی من بگم گروه اینا صحبت کنم بله میخواستم بگم که من که داشتم می‌مردم یه در خودشون گفتن اینجا ضبط کنیم عینک و تو ماشین جا گذاشتم یه دیوی سی یه قیمتش بود حالا استفاده کردیم دیگه 100 یورو میشه دیگه اون چه بوددارره رادیومونهدم